اللهم الحمد لله و و و رحمت را خریدی. که درباره حد صاحر بود و من در اینجا به و از تا خود سه من بود به صاحر حدش شد و نحس روایات و مسئله ترقی قبول اصحاب و حقیق اصحاب ارز شد که در این مسئله شرک تاریخی دادیم که از امیر روی موقعی انسان الله حالیه اصولاً مطالب زیادی در ارمیان رو بزرخیر چه شیئر چه زیدی چه اسماعیی چه سونی از برد کتاب های خواله دو دیدن اونجا که برنن فتا در این کتاب های ریگشون با این که نسانه سعیم دارن باشید راحتشون خوب باشه اتا برای علیه بنزدور از یعنی بردن هم نویزن برای هم مرابک نویزن برای علیه بنزدن نوی خدمتون عرض کنم که راجع به ایشان هست، یعنی نجومیه نبودات از علمون زیادی بود. هر شمیدار خودمون هم میدم این میشه که کشمش جمعواری بشه با دکتر و تو حد با زرافند تا همیشه حدس و ساحل جنبشی که لطیف باوره لطیف. در این بابی که در کتاب یه مقدار از این هست بوده دارم در, در حدود در باب ولی حضرت مهارب رو در حد ساهر را این, هست این باقی. نمی که از کافیان هستیم یک حدیث برا که که از یوزر است یوزر و این رو ما متعرض شدیم و عرض کردیم به این که این مطلب در کتاب کافی در ریگر از دسته آمده از در که روزه همین به قتله آمده احتمال هم شد منو مکلینی هست روزه روزه هست که روزه بعد از مرموم کلینی هم مرموم شیخ صدوق این دراته نگورده مرحوم شیخ توسی در تحضیب در هم بابا زیادت آورده بس آورده اینچه هم نگورده تحضیح در شرح در شبه احواهت ممنه نگورده بابا آخرش آورده اون رواهت هم که اطلاع آورده پشت دارم نبیه تحضیح دارم بود این یک کاری که مرموم شیخ توسی برد در از این دو بزرگ راستا اونجایی من میتونن شاید نباشه فتوا هم برگی نیست یوز به در بسند واحده سامان برگی اونیه مشهورتره فتوا بر مسئله پتله اما یوز راودسه فتوا نیست این را رو خود روایت است و به اصطرح تلقیه از بسها از این ربایی خب این جا همشه مدفیه بیاده ها بسین به لحاظ سند ارز کردیم جز احادیز بابیست که کمی ها بیز بیزر کافی از حبیبه در حسن نمکتره راه نیم داره نوسخم مختلفه هم نسخه کافی مختلفه هم نسخه در تحضیب آمن مختلفه خیلی استعاب داره در این متن سند حضیب خیلی وقت در راویه اخیر هم بشار یا یسار هست که اون را مشکل داره و اصولا اینجور فهابیز غیر از ها مشکل را مشکل خهرستی هم به لازمان داره یعنی نیموشیم تاریخ کروشم بگوین از تا فران بوده نسخش این بوده این چیزا را نیمتونه بگیم خیلی مشکل داریم این روایت و لذا تقریبا میشه وقت که شاید مثلا یه جهت دیگه حالا الا تقدیر ثبوت کلام این را به این بصیبه باید در درش ما حالا کلام فلسفی یا هر عقاید صدقه حجت که تو دست که اونم میشه کلام نه خب از مشکلی هم داره سرام نیست داره هم داره نسخ کافی الکتابی مختلفه اینا همه مشکلاته. من داره دقیق نمیگرم. داره شواهد سلوی رو جمع میکرم. در از تنها شواهد ایجابی که برای شبر دیدیم این که در کتاب کافی آمده در تحضیح همش ایش توضیحی نزده تو ابروزیادت آورده. فقط همین نقطه مصادش همینه. بیر از این که کافی رو در این دو صاحب آورده از که رو رو در قلب آورده که من بخواستم این رو عرض بکنم در محتفظ شدید شباهد رو که نگاه میکنی در موردی خبر، شواهد سلبیه، همه شواهد سلبیه، شواهد سلبی زیاده اینجا بیش همه شاهده اینجا بیشه این شاهده مقطه مصوردیه که یه اونان توی که دارو کافیست همه دیگه مقطه مصورد نگه به لحاظ فتواه، به لحاظ شمرت، به لحاظ ارتضاع بعدم شوارد دیگه یکی ما اصولت نبار میدونیم خود شوارد هم هست اصولاً این رو کیفتر نمیدونیم با شنفی تو کلیه یکی بزنیم شنفی تیز باشه نه بایده سرکس کلوخ باشه نه بایده, بایده باشه. بمیره نه میره اصابش به هم خود بشه میبانه بشه سی سال اصلا این نگهداری زن نگرداره زنبسی خب با باید کیفتر مناسب باشه یک کار محبوبی باشه رضا مجبوریم هم درشون برای یک شمایه مثلا بگیم کرای از این ظاهرش که مثلا خیلی حکم عجیبیسه این حکم، حکمان این هم یک شاهد تربیه ها مجموعی شواهد و ایجاوی رو جمع میکنم پس در ذره این دومون نه توی تبایدو ناقت بوده میگه شما منظور من کلمه‌ی این جور طنز میشه اما نیست معنی تحتیش نیست. نه. زبانان طالوم راش نیست. نه. مثل زهده زهده به ما یک کنایه مثلا زغیره زیتون شش خوردمان این کوار کنایه بگیم ممکنه کنایه گفتن مستحیل نیست اما اصل اولی نیست سو الفاظ. به هر حال این چه کنایه بود میشه شواهد سردی. ما وقتی شواهد برد بررسه بله بررسه بله چرا ظهورش که اینه حالا فرض کنم اصلا بیگیم که محبوب نیست پس یک شوارد شیعی داریم بلاحاد سند بلاحاد مثلت بلاحاد تلقیت ها بلاحاد فتواهر شودن این همه شوارد سنگیه از کنم در تمام شواردی که نگاه می کنیم سنگیست اینکه این که کنه می اومده اونم تو اقواب حتباب حدسانی شکمیه دست قانونیش هاسته قانونی نیست این هم شرایط استانیه. مگر تصریح میکنیم که این تعبوده سر میشه یا میتونه تعبوده سر؟ مشکل نداریم. اما با این کشور ولی تعبوده سر اینطور نیومید خیلی مشکل. این شکست شاید می‌گذره شواهد شیعی بود، یک شواهد قانونی بود که همه منفی بود. یه شواهد اسلامی هم هست. دستور اسلامی متأسفانه منفیه. برای کسی به عالم های اسلام باید نیست در بردم واحده و با بررسی هایی که شده این ظاهر همون قصه جندوق باشه یا باشه که در کوفه اتفاق افتاده. که بخیر جندت چون پیش ولی یک صاحبی بود این فرانستادی گار میزه تو درنگار وارد میشد مرز برنه خارج میشد م می نگاه میکن شمشیر هم که شغل که پییان بر ضرانه وارد هر دو صاحب ضرتون به سر محکم کوم با اون درتون پشت اون کم خارج اگر راست باشه مرگ اون صاحب ضربه واردی بوده که چرا اون بودن هم شده بودلت د کجا هم در منترمون در شهرره و برای که عملی لذا این رو که حد و صاحر ضربتون به صفحه که نگاه که سنان هست همین رو با که داریم هست خودش گیر داره میگه این حدیث اونجا داره اندر حسن وصلی ان جندر قابقا رسولله بعض خودش میگه تلمیزی بعضی گفتن نحن حسن هم رسولی بعضی گفتن این کلام خودش جندر داره بعضی گفتن کلام و حضر اول تا شما بود حضر اصلا این فتوه حسن بسری بوده که زر به سیر. و گفتو شده فتوه های جنده باز دل دل در جنده بس که جز صحابه از آنه از دراست هر شده یا بود گفتن موجود نیست ایشون جز صحابه باشه بعد قبل از حضر بسری اصلا همه اسمالی مسلمی سکونی ما نیست سکونی ما مسلمی رو نیستا اسماعیل ابن مسلم نهبوند ترمیزی بگیه اسماعیل مسلم قابل, قابل, قابل نیست این قابل یعنی پس منابراین بعد در ماسنب و عبدالعظام آمده انل حسن قادر الله که گفتن مواسنه در صورت ترمیزی نیست وقت تزواه هم آمه ندارم بریم پس احتمالا ریشه های این حدیث بین ای بوده که در کوفه واقع شده این نه شده برای به امان نسبت دادن هم کردیم به اصطحال این, این در دنیای اسلام این قصه یه جندبه و حتی آخوشان سرصدایی گرد کلابت حتی سرصدایی سیاسی ایجاد کرد. این مثل یه رو سنیان دارن تو مصادر ما نیامده مثل تو مصادر ما نمیده که شهر و اخبار ما رو قادم آمان مثل تا بخشی از مجموعه ام تا سنت مجموعه خوبی داره یه کتابی هست که بزندش نه بلکه کتاب در جایشی است تصمیت و من شده زکیم مالعه رافه من توضیح دادم کتابم تیگریش نداره ایش با هتیسیه شرکت کردیم این کتاب کدی است که من شده زکیم اما یک شنیدگران نسخه دارن اینها اون نسخه ی که هم به من رسید خامی شابراه قرار بازی ببینید افیش های اخبار این سیاق عدد شهده به سفین این سیاق عدد به سفین مالی کتاب نیست. این از اون کتاب تصمیتان این شهد سفین این کتاب, کتاب باشمان برنه اول هست کتاب بسیار این کتاب به چون از که این مرارم مبادیه به دیگه از این کیشون آزا بودات از یا چیه هم نیست چی رئیس قبوه قضایه و رئیس دار افتاق اسمالیگاه هست. خوبی چیه باشه. خیلی این میشه. در این شرایط اخبار که این کتاب اگر راست باشه سر یعنی نه سرن این کتاب. خوبی از ایست یا خوبه. چون در نیمه قرمه خیلی قرنی. و توضیح که هستن که این, این مرحوم کتاب در اثبات اینکه این جنگ های کنگی در سفین و جمن رو نحران کردن اینا به ارشانی به مسئول الله بوده چون داخلی این به سلام اینا مثلا توژی بودن که نه. این جنگی داخلی بوده در این تقیی کردن اینکه از روحاته از اینکه از پینام در از این بود که, از که از صحابه مثلا در جنگ سفین اوندو در هفته تا برداری ک توی از شرمالیه چند تصحابه از این ها این با بزرگان تصحابه بزرگان کسانی که شعرهای نورالیو ده اویس و ها اما هست نمیچنه یه هم شده شده یکی هم شهید شده ازوان و این, این کتاب رو نوشه اگر رو رو روزا باتن و بزرگان و از و از روحصای اشاعر در سه جنگ با اولیان رو نومنی بودن سفیل و نهره ها نشان بسنان این تفاق شنش این به سه ای تفاقید کسانی در سفیل با اولیان هم این جنگه بودن هم این جنگه بی ای که یا رو سایر رو بین کش این جنگه در جنگ سفیل شنیدن بشه تو بود یکی هم این در این مطنش این یه قصه ای که در مسادر آمنه هم آمده این که به همه در عرب بوده در دونه در مدینه کوبی که بود میفنن در و ما جندر. جندر صبح که شد مردم گفتن یا رسولی کیه جندر ت... سمعنات تذکر و جندر قال نه رجل قال لهو جندر من امتی یه رب و بکن یو فرد قوه اینال حق و ولی که اصبات بگن کنی که این جندر درم یا به سایر درستی بود میگن قیعمه اینو ما از محدد نه هم اون سند دیگری بود این سندی سن که اصلا به این شیعه یعنی یه یه شیشه ما به ما نمیونه که این عجيبه بود از اصلا میشد نمیو ابو خاطر عبد بوده خودی داره و زیاد شعر کرد شده خیلی مردو با شخصیتی بوده عبد بود. یعنی در جنگ اسیر شده و از تنید بیشه رسول دا پیشه از خودش و زنش اصلا قابله ایمام حسن و ای ایمام موسیقی شهر کرد در تخصیل از زرمان ما رحبی که توزیاد شهر کرد از یک شخصیت پرکار تحکیل این کتابی به ما نرد خیلی درزید و, و ما این آقای شیش امامتان تو مصر این کتاب رو به اختیار شده نرده بله بله. برای یه و در و تن یفرده و الباتر یه الله یوملتیامه بین زمان که این کاری جندر این جندر کس نصف حد دو بعد این مطلب که هست پیش نبرده موظفانه که این کاری بکنی یک در که یقرب فی ها بینن حق بر باسر خوب دلن محدود بشیم چطور؟ شد و هم چه حالا از اینکه بعد به عثمان رسید عثمان رو به خود بود و چرا کوش 6 سال حدش ختم نیست این سر صدا من دیروزم در هنگ بحث کردن. این بحث کردم اولین باری که این دسته به دنیای سیاست کشیده شد و چرا مال زمان عثمانه که بدین هم این جنده از نامیار مؤمنین بود اون وقته داره قال انا آتی که بالبینه بعد فقال لخول ولی لما فکر تو چرا کشیش قال انا آتی که بالبینه انا نبی قال ایسو سمیان داره ترمزی هم داره من را آساهرم فلی ابرو بستهی البته در ترمزی اینطور قال رسول الله انجنده قال رسول. این حد و صاحب تعدیرش در ترمزی حد و صاحب غربتون برده غرب تو اون دسته حوشش که داره که پیغمبر نسواد داده شده واسم پیغمبرم قبلا قبل خبر داده بود حالا در اینجا داره که در اینجا قیر از اینجا هست, از اینجا هست. هست. حالا اون که توی این محنه پس منابراین به نظر ما روشن شد تا حد زیادی اگر این قصه راست باشه چون ابن هر زنسان یه قصه درود به سر یه به درود بله حاضر سند نصاب کن شما سند نداره نصاب کن اصلا خود قصه جندم سند نداره میشه اگر چی بوده برگشته به همون قصه جندم و قصه ولید چون میدونی که شما جن ولید و حثمان در گوفه براندان شیعه رو ولید خیلی حساس و خیلی هم گندش نهدن. چون آنیه مبارده اینجا این پرد اون که اینجا اپنون فاسمون بنابرای زباره هم به از نوعه شیعه شما که که بود اون کاری که کردم که بودنش هر دزدن تازیه دزدن الان اینکه احتمال داره احتمال داره که الان تبدیلی که این مطلب رو مثلا در شیعه بوده شاید امام این بسته رو نرمی کردن آقا این هم شاید کردن از این حکم شاید مثلا قراری ما خود قصه ای پرونده در, در مجموعی شواهد دینی داریم در قصه ای آمده امام عبور نکرده این قصهش در شرح اخبار آمده سنده زعیفه در کتب بحث سنت آمده سنده زعیفه شواهد طریق در این مطلب ما الان نداریم از این کسیم گفتن جنده من روز که در کرده روشت صاحبی داشته هم قصه درست نباشته این با این جویی ما به صورت خدمت ارخیم داستان رو این روایت اول ما که حد و صاحب این ضربتون به این دوم از مطوری که در اینجا نسبت داده شده به امیر و این من به حساب قاعده از این کتاب نمی کنم یکی دیگه, دیگه یه روایت که به اصحابه مهمار به همیان نسبت میده اون روایت از مرحوم شیخ توسی محترقه اون هم تا احواب و زیادات مرحوم شیخ توسی نمی از کتاب سفار از کتاب سفار و کتاب شیخ اما تحجیب هسته نه خیلی عجیبه مستدار زیاری از روایت شبان برداد میده شیخه پیش کلیه و سرونیز ممنون شیخ ترسی در اینجا دو تا روایت توی این باب از کتاب صفا مغروم کنه در همین باب منقنخی تو زیادا هم هست خود روان باب نیز یکیش اینه صفا از حسن نخصای خشاب که تازی خودیده قیاس ابن کندو. این در کتاب لسان و نوشته در بعض از نصف لسان قیاسم نه حلوبه نه کلولیم در حالا خودش میگه سه اینجا نشته قیاسم در بعض از نصف ما هم گیز آموده اما محقصت فیحت سنده ایست قیاسم بجلی این قیاسم کلولیم که از آن رو من در کتاب لسان و دیدم دارم اما دو تا بیشتر در حدش نبودی ای که اینکه که گفته مچهود و نیگوزه ضعیم کن این اصحابه نهما و جعبه نهبیه این نهلیم کان یهود از کنید راجب این که تا صحبت کردیم یه تقرار نکنید من تحلم منصر شیعن کان آخر عهدی در به یک روایتش اینه یک پکش این متن روایت من تحلمه اول توش داره نه توش عمله. یا من سهره چون ما در روایاتی که از رسول داریم مثلا داریم که من سهره و سهره من تکه هره و تو که هره اینجا داره عنوان من تعلمه من از سهره شیم و اگر کردیم که این از همون قدیم هم در عده از حتابا آمده که تعلم و حرام مجرد در شایه همون در بحث سهر قبرای در بحث هره می تو بزید داریم که برای ازا صاحب جواهر در ضعیق عبارتی ایشون در اون بحث مکاسه محرمه پیشون میگه خب ایشون تحجیب بوده تعلیم سه نه عمله سه هرامونه تعلیم سه اینجا هم خیلی عجیبه در بحث حدود صاحب شرایط نمیشه حد دو صاحب گیره نه متعلم سه بعد محرومه صاحب جواهر که حادیثه میاره دو جا به میگه تعلیم صحر حد نداره اونی که حد داره خانه عمل صحر پس یک مطلب اینی که چطور شده در قدره از فتبابا عنوان تعلیم صحر آورد چون بعد برد میگنه برد صحر رو تکلیم میکنه میشونه اونجا بوشن این چه اما اینی که کامعا اهدی حدیهی برم اشاره از کف مزاده در از کفت این طوره واضحی آمده راضیت داری که سهبا تمام اینا منصوب وحرمانید اما این مد من تحلیل نصف شیعه این رو ما نداریم و در مجموعه روایاتمون این محجرمان دارید کلاست نکرلون هم گفته شده در آمن هست من شون توضیح مفصلی هست کنم تصویمی دقیق کنمید اونجا هم از امیرون به اصطلاح آنجای نحدیث قدرازی حدیثی جفتر یاد میاد که مقدم احادیسی که در حد سهره چه در کتب سنی ها چه در کتوب اسماعی ها چه در کتب زیدی ها چه در کتوب امامیه به همین رو به همین این خیلی جاده توجه وقت بکنه با ما باشن کل روایات میدن اینجاست از کتوب سنی شیعه استخداش باشن مسورهاشن بینیدیسن را اشاره بکن در زیل هرین بسنیم آیا این مصر میشه الان قبول بکنیم متاسفانه الان در ای که ما از امیر مؤمنیم داریم ما خود ما و مجموعهی که اهل سنت و یا زیدی ها که ما داریم یا اسماییدی ها تا که من دیدم این تعبیر رو ندارم من تعلم شیعه این نیست که آخر احدیهی برم به. داریم که از سحر کافیه یا از سحر و کفرون تعلیمون سحر و کفرون این و کفرون کفر. این داریم که می کنیم تعالیم یا شر کن اینم داریم اما من شی امن است بله در کتاب مصنف عبدالرزاق به سنده خودش از هفوان ابن سولین قارب قارب رسول الله سلام آلیه و آلیه و, علی و من تعلم از سهره بلیل و كثيرا كان آخر احدی من الله پس این حدیث در مساده دیگه نسبت داده شده به شخص دیگه رسوله رسوله راسته ها ربطی هم به نداره علایه این بخش، اول که به امیر نسبت داده شده مصبرش هم در شیعه امامیه دیگه نیست آن این کتاب سفار اون اتناب مجاسته کلوبی که شراحاتش رو کرده روشند این یکی بعد فرمان به حد دو و القتل إلا انیتور. این که حد دو صاحل این در مسادر نسبتا زیادی به امیر نسبت داده شده. در درجه اول در خوده اهل زیدیه در خود مستند زید داره خود مستند زید ا عبارات مستند زید اینه که حدسن زید بن علی عبیه ابي ابي ابي ان جابيه ان علیان و چون قال حد الصاحب على در این متونی که ما الان داریم که در بغض زیدیه حتی سنی ها حتی تو مصادر خود ما الا نداره این الاعنیتون مونه هستن در مقصد قیاس مکلومه و از حدیل شبیه این هم نداره شد مجموع نقل های میگیم چون این هم شده فرد حل دماغ این هم داریم دو تا ربایت که برمیگرد مسادر زیدیه داره مجد مثلا در کتاب دائم داریم این حدیث رو در مصادره زیادی داریم این حدیث رو می میخوام خدمتون این حدیث رو در مصادره مثلا زیادی داریم دو تاشو اونجا هست اینجا هم الان می میخونیم دو تا حدیث که مربوط شیخ سوسیه هر دو رو منفردن آورده یکیه در این در دو کتاب در دو جاش آورده اون حدیثین در جلد شیش تحرین آمده احمد ابن محمد ابن عیسا این معنیش که از کتاب اشعری گرفته ای از آداده کتابون دیگری از کافی دیده این در, در کافی نیست اما امی جنفر در این نصفیه جلد سی جامال این رفته ای بیو احتمالا امی جنفر اینجا روز نباشه هم حالای ابی جه ابر باشه احمد برقی مراد همه ابن جبزا وحب ابن کشی فلان منبعه نه انه حسین ابن علوان کذبی انه امر ابن خالر علی آبایی من چند جلسه توضیح دادم در میان کتب اصحاب ما که از کتاب مصنوع موجود مستند مصنوع زیب ما از آن خود به نظر من حالا می‌نکنیم که به پیش‌کارش و سیوکارش و چیکه اولی مانده است. و از آن موقع با جامعه همه ما شد سیوشو کرده. به هر حال کتاب مصنوع این همه سندی که اینجا هست که همین حسینیان آلوان و امروزن خالده و امروزن خالد راوی عصی امروزن خالده اینه این سنرمی کتاب خود مستنده ایدم هست ما واهمی سنرمه میکن چیزی که جای تحجیبه اینه که علمان این حدیث تو مستنده نیست نبیدونم فکر بکنم چون نشد دیگه امیزه هم کتابی زیدی در دست رسارم بودن تو مراجعه بکنم فکر بکنم ذکره چی دیگه هم از ذکره از که از این با سنده مصنفی همه یکیه به ذکره و سنده یکیه لذا در کتاب ال بحر در فاشش تا سلاح و قصور پس یک که به امیر نسبت داده شده حدو ساحر الارض حالا این مصدر این کجاست این تعبیر حدو ساحر الارض این تعبیر این تعریف در کتاب مصادر است ما اینو داریم در این کتاب بیאסر نگفته حدو هو الارض الا ان یتحوک الا ان یتحوک انجام داره اما وقتی وا الارض کتاب ما الان بله نداریم چرا اونی که ارخان داریم مثلا در بند در تقاقا سال موسیقی یکتر اینطوری طوری داریم اون تحبیه هم دو حلقه الانیتوب بینونه الانیتوب رو در کتب زیدیه در کتب اصحاب ما ب... از مسئله زیدیه این رو نمک البته من تو زیر بدم مرموم استاد هم ابو و هم حسید این اولوان رو برای اولوان مختلف قبول دارن امروی ابن در کتاب کشی توصیف شده بیشون این سندگاه ها معتبر میدونن و چند بار توضیح دادن قهل سنت هم به اتفاق امروی ابن خالد کذاب میدونن اصلا نسخه ها منچه بود میدونن هست که که ما در دنیا اسلام نراهای صحابه لبکه نه همینه قبلدشون کسی نداره که امام سجاد از پدر کنه ما از پدر ما غیرقین از صحابه اولاد و افقاد صحابه به هر حال استاد این رو معتبر میدونن اما اما حضرت زدگی ها هم ادنیش رو معتبر می دونن اما شد شدیه منطقی این هاستند زدگی تا بزیگه همش اون رو کذاب می دونن اینجا اینطوره اندرسولا قال سوال علیه الاسلام اذا و جدان اجلان فايش ادانه عليك اذا حد این تعبیر هر الان توی موجود نیست. اون اصول اون که هر در باشه انجامش اما به نظر من به نظر شاید نسخه مستند بیا تو اصول احکام که تاوریی داره که, که در مصنب نیست پس این یک نقل در جلد شیشون تحضیره در جلد دهم تحضیر محمد ابن حسن صفار که در جامعه آزیز جامعه آزیز این مذبه این محمده نه اوازه اشاره بشن محمد ابن صفار جوزا که انا حسید ابن حلوان انا امور ابن انا زهید ابن حلی ابن حبی انا مثل آن پس تا اینجا روشن اون دواست اینطوریه ادارجا رجلان حفظان یا شدان علیه این دمون این کتاب دعایم هم آمده پس این محضی که منصوب از و مؤمنی یک در کتاب ستخار پیش آمده کتاب احمد عشقی پیش معامده البته این دو کتاب یه کسی که از اون کتاب نبید اینها نبید میکنه از سنز زیدیه در کتاب دانمات اسلام هم آمده که اسماعی دیوز این هم بخنه زخار که زیدیه این نبید میکنه با ناموسلم هم حبیلیه میگیم می کنم نشد نگاه بکنم که این دو تا هر دو صاحب هم قطعه هم در مصنع زیل آمده این که یک تن صاحب رو مسلمی ملا یک تن صاحب رو کفت این هم در کتاب روایت سکونی آمده بیشه باید. این هم آمده این محلق این محلق آمده خب ببینید چرا مختلف فقط در یک طریقش آمده ایلالیتون در بقیه هم درک میکنی؟ تو تمامش داره حل دماغ دو ساله فقط یک طریقش که قیاتر میکرد حد نشته به هست دو و بعد ظاهر در اون مصدر رسید زیر هم یکی از امیلی دیگیه که همیلی دیگیه نام یه یه نفوسی از سالات حسنی ایشون کتاب از حکام زد ایشون تتواش این را. از امیل المهمی زیاد نرمون از امیل المهمی نرمون نمی کنه لیکن اینه خودش این از تزمینه که این در ما سیونها نرده لعنی پس در این باره از امیل همینطور که الان خدمت رو عرض کردیم هم به حسانیل متعدد هم به مسادر مختلف نرمه شده که هر دو صاحب هم بردید تعاویش هم عرض کردیم و تبییر دیگر که هست که از سهر و کفرون از برد این هم داریم این تبییر از سهر و کفرون یا از سهر و اشهر مرونان هم هم این هم داریم این هم به همی رو نومنی نسبه داده شده حالا چون از سهر و کتون رو برمویم بگیم حالا می‌بینیم شبارد رو به دخواه شبارد تمام این شباردی که هست کردیم حاکی اینه اولا که یه هم دو سوالی هم مسلمین سال رو و سال رو کفار رو یبتن. این مطمئن خودیم می کنیم شبارد ماده دو سبونی چبیه این هم فیلی نور یاد داره حالا علی که پیانبر اکنه فراصله نه اصمه یهودی سه روشنن و لن یخصر رو چون خودش یهودی بوده پیانبریشون نکشن چون سه هم هشه که هر از هم من هسته این هم داری مشکل دیگه من از مادم رو اون چند مشکل فقط در کتاب که برستا در منصر شده به نام جعفریان یا شسیان در هیچ خودم از این مسادردی همینه نیم از رویزی در کتاب جعفریات اینجا در این کتاب جلد سیوییک همین باب مالسه از جعفریات به اصنابی انحریه من این نه هستم ای سهر و نهی این نه خیلی کریشید هیچ شاهد تاییش نه چون هست در مستادر احسان صحیب بخاری از که پیغمبر رسی هم کنند شده مثلا قضا میبردید رو خورده احسان نخوردون رو خورده آیشه, ایشه این رو نصور میدید از این رو بلایی که پیغمبر سال شد بازر هستن از علمای صنی هم هستن از علمای ما هستن که این قصر مشغول میدون چه هم که میدون و این که اصولا اهل هم در به خیلی سورشید. شخص هم میارن برمیر کانی میاند. انصاف هم. وقتی این سیری بهشام نگاه میکنه اون شخص دیگه از سیری درگر در اون شخص هم نیده قرآن توضیح شد یا قرآن مورده میشه. این قرآن به این سیری خیلی تحاوته. انصاف به هر حال وقتی این بحث نشید. این که به اندازهایی در جهور است، مثلا کدام می‌نویس، کدام ندارد، گل و علف در جهور گام می‌کند، کدام بودن به چیزی پیگیری می‌کند. چی داره مثلا از اجرایی بیانی که در تمام مصادره موجود، این هر سه پیامبر، این بود. این کاری که در بعضی داره که شام در بعضی دو خلاف شام بود. صاحب تمام این حرفا در تمام این مسادر آمده که هیچون که هایش را کردن نهرسن را خود نهرسن نا بچی و کیشی را گوشی کنم را ترمان را زنگی را شخصی کشه. در این کتاب جعفری ها همه علیه قاید دارن نهرسن سر رسول ها یعنی حد نسبت برمی یک چیزه عجیبی میام سه جمع رو کنید اونو تحجیب می به هیت صحابه هم بردازه علیه نمی ساله به شواهد بسیار قوی وجود داره که عمرو بکشه هاش یعنی بحث می به صحابه رو هم عمر داره که نامنه روی که یکی از که هر صحابه یکی از با خوش بخصد بزن صحابه رو نرزده کشتی ه سه اونها کرده دستور برادرش رو هم از اون کسری دیگه عمر این در تعبیرات چیزی من سنت شده نقوا دوران 290 شد اصلا خود عمر رو خاموش سر کسری دختری حضرت صاحبش برعقل تا ثاغره خیلی همی حالا چجور شده اینجور چیزه عجیب غریبی رو در بین نسبت داده شده پس در این کتاب چکرینی همه علیه که رسول الله فرمون ساله نسیم یکتن و ساله کفر الله خود کتاب جهد یاد کنم برمیده به این ارمونی که رسول الله پتل رویده نرسن رو ایمان نرسن نبی پتل برمون یعنی انسان تعجب میکنه این چطور بوده کوده فکر پر ایمان بتوانیم نیستی این رو جمع میکنی موبنی. چیزی در آن این میشه از مجموعه های رومنیس این بخش بحث است انواع مختلف در نسخ مختلف در کداوری مختلف در خب این ماجر رو داریم اینه ولی شاید از صدویی هست. است نماسر ذی هست کتبی صومیاس هست تو در خب این یه صاف بود خب یه زن حدیث صاحب ما شهادت تن ضرار اندیاد رو قال خب یه که دیگه هم مشکلاتیه یکیش مال دیاسه نکم ای بوده، پیشتونه مال سبونیه، پیشتونه نونسه، عجیبه. واقعا انسان تحاییات پیدا می یعنی این قبل در من یه دسته واضده از اهمی رو خیلی عجیبه. خیلی نمر من به نظر کسی کار خوبی که مثل مکیه نه اگر فوتوهات الانیه کار کار میده که هم خب یه دون حقیقت اصابه درسته اصابه نمید که حضرت سال فرم همه پادر حواستنی هیچ کدو فرید وضعی با نداره و همه منطقه کچی بردیه نمیتون خیلی این چید منجزه اجایب کاری به متون مختلف و اصانی مختلف به قصد مختلف به متعارضات که خیلی به از کلامی که یک تحایی دیگه نمیده اونم هم به همین سنرها به اینجور مومن نستر داره این منشمه تا چند کنید و دیگر دیگر در جمعه تاقید اینجوری شما نتیجه نهایی شما الله و, و محمد بن